گر دست دهد خاک کف پای نگارم بر لوح بسر خط قباری بنگارم بر بوی کنار تو شدم غرق و امید است از موج سرشکم که رسانت به کنارم پروانه او گر رسدم در طلب جان چون شم هماندم به دمی جان به سفارم. امروز مکش سر ز وفای من و اندیش زان شب که من از غم به دعاء دست برارم زلفین سیاه تو به دلداری عشاق دادند قراری و ببردند قرارم ای باد از آن باد نسیمی به من آور کان بوی شفا بخش بود دفع خمارم اگر قلب دلم را ننهد دوست ایاری من نقد روان در دمش از دید شمارم دامن مفشان از من خاکی که پس از من زین در نتواند که برد باد قبارم حافظ لب لعلش را جان عزیز است عمری و لحظه که جان را بلبارم